عالمین و صلوات و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحاب یجمعین اما بعد ای تواریه ها اوذ شماجی نه حالا دو تا سوال هست تو. بعد ان مسائل بعدی یک سوالی هست در مورد خوردن از منزل میت این مسئله است تقریبا در این نوع مسائل مردم از بیخیالی یا سهلنگاری بیشتر کار بیگیرند این کمی توضیح بدم قبل از اینکه داخل داخلی مسئله وارد بشیم خداوند متعال حقوق الناس را در قرآن به صورت ویجه ذکر میکنند مثلا در باب عبادات ای و اقیم و نماز بخونید. یا در باب روزه کتب علیکم السیام روزه لازم شد از طلوع فجر ساعت غرو روزه بگیرید احکام بقیه اون خیلی کم داخل قرآن اومده اند حج هم اومده اما با اون تفاصیلش نه زکات که مثل زکاة. نماز اقیم الصلاه و و زکات نماز خوان زکات بده اما مسائلی که متعلق به حقوق و هستن خداوند مطال خیلی با یک احتمام با یک توجه ویجهی داره ذکر بیکنند سور حجرات نگاه کنید بحث غیبت هست جدال طوائف هست اختلافات خانوادگی ای هست تمسخر کردن هست نجات پرستی هست و سورت های مختلف اخلاقی که اخلاق فردی اجتماعی همه اینها رو شامل میشن یا در باب میراث نگاه می کنید میراث خداوند مطال حقوق میراث را اونجا دید مفصل ذکری می می‌فرمایند می که قد اعلی یوسی کملو فی اولادکم مثل مسلحه الانثین خداوند متعال توصیه می در تقسیم اموال پسر برابر دختر سهم می‌برد. اگر دختر یکی بود و بچه غیر از آن نبود سهمش نصف هست اگر دوتا بودن سلوس هست پدر مادر باشن همسر می آید پدر بچه دار باشن یک ششم بچه نباشه حالا تقسیمات بعدی حالا تقسیم کرده الله رب العالمین حقوق را و خیلی از چیزده رو خداوند متعال دارن خیلی مفصل بیان می کنن. یا جاهای دیگر هم اگر در قرآن بنگرین خداوند متعال این قرآن مسائل مخ... یتیم هست در مورد اموال یتیم هم یه توجه ویجی الله رب العالمین دارند کسانی که مالیتیم میخورند می در شکمها آتش میخورند تاکید موال تاکید حالا این سؤالی که حالا مطرح هست خوردن از بیت میت این هم چند صورت داره کسی فوت میکند کسی فوت میکند حالا اینکه که چند نفر اونجا بشینند تا که درد میت سبوک بشه این ممنوع نیست این جائز هست حدیثی داخل از بخاری در کتاب الاطعمه و همچنین در قسمت کتاب و تب این حدیث اومده حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی ها وقتی کسی فوت میکرد برای اونها تلبینه درست میکرد تلبی ای بود از شیر و خرما و روغن و تلیه خلوامانند شیرین درست میکردند و می وقتی که مردم میگن وقتی که مردم میرفتن آکت مردم میرفتن و فقط همون افراد درجهی که خونواده نزدیک میموندن اینها درست میکن. چرا؟ جمع و فواد الحزین قلب حزین را جمع میکنه تقویت می کند این غذا. اما در این اینجا ای چیزی هست دو نقطه اینجا هست. نقطه اول این است که افرادی پیشه، اولیاء میت جمع میشن اگه تنها بشینی ناراحت میشه سکته میکنه های. درد سنگینی اما اگه چند نفر دور برش باشن رفت رفت دردش سبک میشه این درد میره پس جمع شدن اشکالی نداره داخل مدینه منافر جمع شدن داخل حدیث اومده که هر وقتی که خانم ها جمع میشدن اینها که میرفتن همون خواس میموندن خواس کیه؟ بچه ها که نیستن خواست بچه اهل خونه هم یعنی پسرمو و دخترمو خانواده نزدیک اونها اونجا می اومدن پس این تا اینجا اش اشکالی نداره مسئله بعدی اینجا حضرت آیشه قضا درست می برای اونها میگه من درست می کنم تلبی نبی, نبی می حالا بخورید چرا چرا اون درد سبختر چون چونکه این حالا افت فشار میاد، و غذا تقویت میشه بدن دوباره وقت بدن ضعیف میشه غم فشار میآوره. غم اولی کاری که غم بر انسان تحمیل میکنه چیست؟ اولی فشاری که غم در انسان میآورد افت فشار هست افت فشار از غم خیلی زیاده بی اولی قضار بشه بده وقتی بدن تغویه بشه بدن قوی بشه در مقابل غم و درد علاقه مقابل قرار میگیره برای غم هم دارو هست شاید در پزشکی دارو نباشه اما شدیه میگه دارو هست دارو شمینه این دوار بدنش کن بدنشو تاکمیتونه استقامت کنه این یک حدیث اینجا آمده اما حدیث دیگر وقتی که جافر ابن عبی طالب رضی الله تعالی انهو در غزو موته شهید شدن بعد از اون نبی مکرسه فرمونه اصنعو آل جعفر تو آمن برای آل جعفر شما غذا درست کنی. اونجا ببرید تا اونها بخورن چرا چون برای اونها مصیبتی اومده الهی نه دوبار غذا برن دوبار تهیه کردن گوشت و گوسفند و فلان چیز برن یا اون غمی که راه اونها اومده اونها همون غم برای اینها کفایت میکنه اینها مشغول خودش کرده این هست آداب یعنی وقتی روی کسی مصیبتی اومد درد اومد باید بستگان باید نزدیکان به با او برسند غذا درست کرن برای او بفرستند غمی مضاعف برو تحمل نکنند یکی غم هست که از دست داوود یک عزیزی یه غم دیگه از کجا برنج بیارم از کجا راغن بیارم از کجا گوسفندو بیارم از کجا فرانچیزو بیاره فلان شخصیت اومده فلان آقا اومده فلانی اومده بستگان اومدن کجا اون غم می چیزی اصلا غم اومد اما این مصیبت از کجا پول بیارم این هر تایی ای غمی مضاعف است سال این بیداهیا میمونند نه از کجا کی باید پرداخت می‌کنه این اخلاق اسلامی نیست. این فرهنگ فرهنگ غلط هست. فرهنگ درست همین است که حالا از زینهت ازار رو بد کمکننی اینهای این مراسم همهشون غلط خورما. خورما هست. خورما خرما هستین حالا خورما داخل شهر ما که مرکز خورما هست کییللو 500نجزار گیر نمیاد. این همین خورما از را تهجه میکنه و چند میلیون فقط برای خرما با پودر نگیر کنی غیر از زور برنج گوش حالات تهیه می غیر از اون سالادی که رو میزاره ماستهایی که میکنه حالا دارن چونکه هر رو سفره ازا مجللتر از سفره الوسی میشه. در یک ازای بحرفتی از نشستان تا بلند شدن اینقدر قدر می آوردن آوردن شربت آوردن حلوا آوردن ویبی آوردن تا که بلند شدی اصلا این بشقابیر که می اومد یکی می می اومد چند گروه داشته یکی مسئول زیرای خورما یک گروه مخصوص شربه یک گروه مخصوص حلوا، یک گروه مخصوص میوه یک گروه مخصوص نان راغنی الحمدلله بند چیزی نخوردم بند چیزی نخوردم تا حالا هم الحمدلله در, در خود ازاق که برم برای من خورما هم نمیخورم الا ما که اونجا دیگه بدونن که بسرش فرق کنه خورمه هم نمیخورم. این چیه این مصیبت ها در این فرهنگ اینجوری تشکیل بشه شکل بگیره یک اضای برابر میشه. این ازان این چی که گفت اینها جایز اول اینها ناجایز این اصل مسئله هست اگر شما واقعا در درد با او شریکی کمک کن زیاد نمیتونه دو تا مرگ میتونه فرستی یه روغن پنج کیلو که میتونه بفرستی. یه سندوق گرجه که میتونی فرستی چند کیلو سیو زمینی میتونی فرستی اینها که میتونید لازم نیس گوسفند با چندتا چند, چند کیلو برنج بفرست الله خیلی مختصر کمک کن تا بر اونها یک سبوک، سبوکی بیاد یک کمکی برای اونها باشه این هست اخلاق اسلامی این هست فرهنگ اسلامی حالا مسئله ما اینه که امروزه حالا پدر فوت میکنه پدر رفت خونه هم اونجا بازه اینجا مادر فکر میکنه من دیگه همه کاره هم. تمام اموال مال من هستن حالا هر جور بخواد تصرف بکنه چه کار بیکنه, چکار بیکنه؟ تا من زنده هم حق نداری که ادعای مال کنید مغالج دست من درآمدها دست من هر چیز مال من آیا واقع مادر چونی حقی داره نه به محض مرگ تمام اموال از ملک پدر بیرون در ملک ورسه ها داخلند مال ورسه شدین یعنی حق ثابت شد کسی نمیتون جلوگیری کنه اگه استفاده نکن حق میشه حالا تو نمیخوای استفاده کنی تو شاید وزد خوبه به بجای میرس جای دست شاید دست جای بند هست میگن نه این خونت بزار منجوری که یادگار پدر هست این وسائل این تکان نکن یادگار مادرن. فلان چیز رو دست نزده که یاگر فلانه اگر خدا اینجوری فرموده تا که یادگار تا که فرسوده بشه از بین برن نه خدا اینجوری نگفتن مال مال برای استفاده مال برای رفع حاجتن داره اون در فقر زندگی بیکنه اما اجازه فروش منزل نیست از حقش نمیتونه استفاده کنه چون مادر نمیذاره خود مادر حقی اینجا نداره حق مادر فقط یک هشتوم هست اگر داره فرزان باشه. یه هبلقی دی بقیه اموال مال برسه مال بچه مال دختر دخترها، بین همه تقسیمیشن میشن. فرق نمیکنه که حالا از این مادر باشه یا از مادر دیگری باشه مال مال پدره، بچه ها همین این ای فرهنگی غلط چون ماله ها رو در زمان من حاصل کرده کسر کرده جمع کرده اینها مال این بچه ها از زمان تو رو عقد کرده حالا چه کرده اون مال شما؟ اینجوری نیست. حالا یکی؟ اگر پنجاه سال با پدر هم زندگی کرده باشه در سختی‌ها هم با او همراه باشه اما یک بچه‌ی آخر عمر متولد هم بشه فرق نمی‌کنه از این مادر باشه از مادر دیگر باشه اگر از مادر خودش باشه ناراحت نمیشه برادر بزرگ سی سال بزرگتر باشه برادر کوچک نمیگه که سی سال من بودن زحمت کشیده نمیگه، میگی خب برادرم هست اما اگر از مادر دیگر بود فوراً دیگه شاخ می‌کشن که من اینجا زحمت کشیدم من خود را پیر کردم فلان کردم حالا به تو چیزی نمیدم بعضی این, این هم اینجور نیست غلط هست اموال مال بچه ها برای همه هم تقسیم میشن. کسی هم نمیتونه جرونه ها رو بگیرد مادر هم حقی ندارد بگر اینکه که ورس ها چیدازنی باشند مسئله بعدی حالا مادر شد اونجا حاکم منزل مادر احترام داره اما نباید حق اون بچه های که اونجا هستن ضایبیش حالان بچه نابالیگ از هر مادری باشه. در اموال شریکن اینجا و بخواب نیست اینجا حالا بخور برو حزین ها میرن بالا اینجا فقط دعوتی تا چه چند ماه دعوتی فقط میخورن از مال پدر سهم العرص بچه کوچک اینجا شامله مال اونها رو خوردن بدون اجازه جائز نیست این حرام هست الله یکی الذي یااکلودم اماالل یتطواکسانی که میین خونمالیتیم را گویا که ها آتش میخورند. اما مسئله بعدی این است که حالا همه بزرگنناابی نابالغ نیستن آیا جووری خوردن خوابیدن خوبه اینجا اگر هم بزرگن را اول به این صورت مراسم جاشن گرفتن اشکال داره جائز نیست، اما این است که، چند،, چند نفر اونجا با هم زندگی میکنن با مادر. یک عروسی هست یک دامادی هست یک پسری هست اونجا در زندگی میکنن اینا داره میخورن اون بچهای که اینجا نیستن بچهای که اینجا نیستن دارن زندگی میکنن اینجا زندگی میکنه حق اونها در این اموال هست اگر اونها راضی نباشن برای اینها حلال نیستن نوای روی اموال به این صورت حیف و میل بشه و تصرف غلط هست با نهار استفاده کنی از اونها حلالی طلب کنید این کارها گناه و حرامند این مالها حرام میشند اما مسئله بعدی این هم بگم تمام کنم این از حالت پدر افاد کرد مادر فوت کرد تقسیم میراست اینه بدونید که خداوند مطال تقسیم کرده اند برای مادر یک هشتون برای بچه های پسر دو سهم دختر یک سهم حالا تقسیمان یا سهم دختر نصف سهم پسر است اگر یک سهمی بره و نصفش رو رو بره اگر دو دختر با یک پسرن تقسیم اون چجوری میشه چار تا می دو تا پسر میدن دو تا به هم میدن و اینجوری تقسیم کنن خدا اینجوری تقسیم کرده این حق پسره حالا داماد شاه بکشه که چرا اعلی مارو اینه تقسیم کردی حق مارو کم کردی چرا بخاهراتو داری نصف میدید این شاخ کشیده رو با شاخش بشکره اشتباه چرا شاخی میکشید تو خدا تقسیم کرده حق تو نصفه خدا این رو اما اگر برادر اومه از طرف خودش داد خودش داد این سوا هست و جدا هست اما اگر برادر گفت نه من حق خود را کمال بیخم تمام و کمال حق و پرداخت بشه اینجا کسی نمیتونه نارهب بشه اخم میکنه قهر کنه باز اخ صحبت نمیکنن چرا حالا میگه یک سهموار ریس کردی تو سهم را داشتی این سهم اگر داره میبره از مال خودش داره میخوره برای او حلال حلالن برای او حلالن این داماد ناراهت نشی حقی ناراحتی نداره اگر بازور هم بخند ببرن چون ما ما هم بچه های پدر بودیم حالا چرا بابا خدا نسف کرده تو بچه پدر ولی خدا نسف کرده اگر بازور بردی برای شما حلال نیست موا که کاله انجور تقصیر کنی هر جور دوست داری تقصیر کنی اما برای اونها میگن که ناراحت میشن و خیلی اظهار تاسف میکنن که الله روی خواهر ظلم کردی نمی این مال مال خودشون بوده حقی الله رب العالمین به اونها داده به هر حال باید به مسائل شریما ما خوشبین باشی و به کم شده قبلها که میدادن چون اونها زینا کم بودن یک که میخوردن حالا که یه همیشه گوشت بگیرن چه کسی نمیده اگر زیاد هم بده یکی است ده کیلو میبره میگه بگیر یه چندتا مورد میره سونه می‌نیز ازینه که چند روز طول میکشه حالا در خود اروصی والیمه فقط یک وعده هست اما در آزار روز سه وادی هست سوخاری باد مرتبه باشه نهایا میرم مغازه میشینه وقت نهایی برمیبری پورسه حالا میرم مغازه بازی وقت وقتی شام میشه فلانی برمیبری پورسه بعضی گروه نزدیکش ایشا برمیبری پورسه. چرا حالا میری؟ بحان این است که حالا مردم حالا میگن تا رو ببینن که ما اومدیم امیشی هم تا که تا شام شب تا شب بلند نمیشن همین جوری نیستن بازی جوری هم حال باید این فرهنگ از بین میری این که میگه ما داری وضعه خوبه حالا ما میتونی خرچ کنی، اما تو داری میتونی خرچ کنی فردا منت میگزارند روی اک چی خیلی از برادران منت میزارن. پدر مرد من هزینه کردن دست رو سینه میزنه این خرجاتی که تو کردی امروز خوبه چون در در فردا که غم رفت مصیبت میاد این که برادره بلند میشه دامال شاخ میکشه تو کجا بودی ها رو من کردم حالا با من اینجوری میکنی تو هل حساب کن هزینه ها رو کی گفت علی خزینه ببین این ها هستن که روزمره میبینیم بعد این فرهنگ از بین برید تسلی هست با تسلی بگو این که اونجا برا شام و نهار و این ها مصیبت ها اینا جایز نیست اینا آب و چا و که بشکی دید متعلق به مراسم ازان نیست اگه برای جنگ هم برید اونجا چای رو بیدن برای کشتن کسی هم بری اول چای رو بیدن با بکش بی بی اون چای دیگه متعلق به چیز خاصی نیست خوب